هر دم از ما درود بیکران بر مصطفى باد بر ترین بدر ادر تمام باد مصطفى شای عرب سرغر و سردار دو عالم عاشقان روی درود به بهترین نسل آدم هر دم از ما درود بیکران بر مصطفى برترین ترین بدر تمام انبیابات مصطفا شای عرب سرور و سردار دو عالم عاشقا نوید درود به بیترین نسل آدم ساغی کسر نبی مجتبا بدر منبر فخر بطهان آزنی مصطفا سید و رحمت للعالمینی شافه نوز قیامت چمس تاون مصطفى فخر جهان برهم رحمت هر دم از ما درود بیکرن بر مصطفى باد بر ترین اتقیاب در تمام انبیابا مصطفا شعر عرب سرهر و سردار دو عالم عاشقا نوید درود به بهترین نسل عالم سی دلکانه بهترین و آخرینی چمس رقشان سما و فخر و آزین زمینی مجتبایی مصطفایی سرمده گفتار مایی تو به روز سخت موحامی و غمخار مایی هر دم از ما بود بیکران بر مصطفا باد بر دریل اتخیا بدر تمام انبیابا عشقای عرب سرور سر و سردار دو عالم عشقا تویید درود به بهترین نسل آدم احمد و محمود و تاها اینگین قاکبت ها نام پاکت تو محمد نخش بس درون دل ها عریتیم و مستمن را تکیه گاه و یا تو رسول هاشمی و تو نوای قلب بیدار عردم از درود بیکران بر مصطفى باد بر ترین ات تمام انقیابات مصطفى شای عرب سرور و سردار دو عالم، عاشق اندوید درود بهترین نسل آدم مصطفی تو با کمالی در دو عالم بیمثالی حسن یوسف دم ایسا دو بیزارا جمالی تو رسول باسفایی تو حبیب کبریایی امتی را گسار و شافع روز جزائی مصطفی تو با کمالی در دو عالم بیمثالی حسن یوسف دم ایسا ید بیزارا جمالی تو رسول بار صفائی تو حبیب که بری امتی را و, و روز جزائی